هرکسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را انور نیست تنز جان و جنز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست آتش است این و نیست باد هرکه این آتش ندارد نیست باد آتش عشق هست در نی فتاد جوشش عشق هست کندر می فتاد نی حریف هر از یاری برید پرده هایش پرده های ما دارید بر ادامه مبحث نینامه یا همون دیباچه و مقدمه ای که مولانا در ابتدای مسنوی آوردن در هفته گذشته عبیاتی رو خدمت سروران گفتیم اینکه مولانا فرمود ما چه شکوهی باید داشته باشیم چه شکایتی باید داشته باشیم به با عنوان یک انسان به عنوان مسجود ملائکه و به عنوان یک موجودی که مورد حسد ابلیس کسی که سالیان سال خدا را عبادت کرده اما این موجود ابلیس نسبت به او حسد میکنه یعنی چی؟ یعنی که در وجود این انسان یک نعمت یک ویژگی هست قابل حسد بزرگی میگفت وقتی دیگران به من حسد میکنم من نعمت خدا رو شکر میکنم چون حتما نعمتی قابل رشک و مباهات دارم که دیگران نسبت به من حسد میکنن ابلیس اگر حسد کرد آدم چیزی داشت قابل حسد یک امتیاز و ویژگی بود که حتی بر چندین های طولانی مدت او میچربید و فائق بود و برای همین شیطانی رو نتونست تحمل بکن این چی بود؟ مولانا اینجا گفتیم اینا رو گزرا داریم میگیم مولانا توی انسان نباید شکایت از شکمت باشه شکایت از معکولات و مشروبات و ملبوسات و از این چیزا تنها باشه بلکه تو باید چیز بالاتر از اینها رو دنبالش باشه، یک شکایت دیگه باید داشته باشی جدایی از لقمه، جدایی از شکم، جدایی از این زباهر دنیاوی این شکوه و شکایت تو به عنوان مسجود ملائکه محسود ابلیس و معلم ملائکه یا آدم و انبع هم به اسماعی هم. معلم ملائکه و کسی که حال الله او رو تاج خلافت فل الارز داده تو شکایت تو چیز دیگه باید خیلی بالاتر از این حرفا باشه شکایت مولانا رو هفته پیش که به گوش ما رسند و شکایتی که ما فراموش کرده بودیم وجه امتیاز ما بود و باید این دقدقه ما میبود و فکر ما میبود مطالب خدمت دوستان گفتیم بعد خاطر دوستان اگر باشه بیت آخری که هفته گذشته گفتیم منان فرمود شما اگر دقدقه خاطر من رو میبینید و اگر نگرانی من رو میبینید نباید تعجب بکنید چرا چون هر کسی که از اصل خودش عقب بمان حالش همینه گفتیم بچه‌ای که از ام و از مبدأ و ریشه خودش بنیاد خودش مادر عقب میمونه اونم یک شکوهی داره اونم یک شکایتی داره و به جز آقوش مادر به هیچ چیزی اتمیننده میگره قطره که از دریا دور افتاده افتان و قلطان و خیزان با یک ترنم آشقانه دنبال وصله به اصله همه این سیر تکوینی نه تنها در وجود من مولانا میگه بلکه در وجود همه مخلوقات این چیز هست هر کسی که از اصل خودش دور بمانه هر کسی که دور موند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش مگر اینکه انسان فطرتش مسخ شده باشه و اون هویت خودشو گم کرده باشه دچار بحران هویت شده باشه وگرنه هر انسانی دنبال اصل هر موجودی دنبال اصل به وصل خودش هست هر کسی که دور موند از اصلش اینا چیزایی بود که ما گفتیم فقط به خاطر اینکه یک تمرکز فکری بشه و بیایم دو مرتبه فکر ما سر کلاس بیاد سر درس بیاد یعنی برای همین خدمت دوستان اینا رو دو مرتبه گذرا گفتیم حالا مولانا دو مرتبه میگه من به هر جمعیتی نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم من اقشار مختلف جامعه رو تجربه کردم ناله خودم رو به گوش همه رسوندم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من مراد از خوشحالان اهل دل هستن یعنی من نقمه خودم رو فقان خودم رو نفیر خودم رو به گوش اهل دل هم رسوندم بد حالان یعنی اهل دنیا به گوش اهل دنیا هم اینا رو رسوندن اما اون چیزی که من میخواستم با این ناله ها به اونها تفهیم بکنم اونها از این ناله اون چیز رو نفهمیدن چطور ببینید نقمه نی یا, یا نقمه یک انسان کامل فریاد و نفیر او او من تو شنونده تو مستمعی یک هیجانی رو و یک اثری رو ایجاد میکنه اما اینجا شکایت این نی که همون روح انسان کامل از اینه که اونها میان این نوارو و این ناله رو منطبق بر حال خودشون میکنن تا از اون لذت ببرن و فقط اینو از منباب لذت جوی و تفنن و تفر... یک تفرجی میان دنبال این میگه خوبه اینم مثل من یک ناله داره بیان با این هم نوا بشم و از این ناله این بر ناله ای که خودش داره این رو منطبق میکنه حالا که این نفیر این نفیر آشقانه ممکن خیلی عالیتر و خیلی با هدف بزرگتری باشه همینطور در و درد و سوز انسان کامل بردیگران اثر میکنه. کنه بلی طرف مقابل اجمالا همین قد میفهمه فهمه که اینم به یک مصیبتی به یک تلخکامی به ظاهر گرفتاره مثل که نالش همین چیز رو میرسونه به مخاطب که اینم مثل من مصیبت زده است اینم مثل من یک دردایی داره ببین نالشو اما اگر از همین آقایی که اجمالی همینقدر فهمیده چیزایی رو سوال کنی خب به نظر شما چیه این درد فورا میاد او رو برحال خودش قیاس میکنه و میگه که خب مصیبت برای منم آمده بلایم برای من آمده منم میدونم این بلاخره دردها رو و این مصیبت ها رو مثل این که اگه بگم تا اونمی میزنم می تو کلیله مسناوی مثلا که یکی همسرش فوت کرده یکی دیگر رو میبینه بزرگی اهل اللهی رو میبینه ناله‌ای داره میگه درک میکنم منم همسرم فوت کرده همین ناله ها رو بعد از وفاتش داشتم همین دردا برای منم بود یا بیماری دیده تو دنیا میگه بله منم طعم بیماری رو چشیدم یا یک محبوب مجازی و محبوب بازاری به او پشت کرده و به او بی کرده فورا میاد این درد خودش رو منطبق بر این درد ها میکنه و میگه بله این هم مثل من همینطوری هست خلاصه این که آه و ناله انسان کامل به هیچ کسی مخفی نیست همه میتونه این رو درک بکنم چون هر کسی به نوعی ای یک مصیبت و ای یک سختی رو تو دنیا تجربه کرده اما مشکل کار اینجاست مولانا از این شکفه میکنه مولانا دردقش از اینه که هر فردی میاد این رو میده با وضعیت خودش با حالت خودش و مولانا میگه ادهی با من همدردی هم میکنن با من ابراز و محبت هم میکنن مگر اخصوص اینجاست که حقیقت این درد و سوز رو هیچ که تابحال نتونسته درک بکنه خیلی کم بودن حقیقت این درد و سوز چیه؟ طلب قرب خداوند من این آه من، این ناله من، این نفیر من و این درد درون من همه در طلب قرب مولا هست، در طلب قرب ذات خدا هست اما کمتر کسایی هستن که بتونن اینو چگاه کنن؟ درک بکنن به حقیقت اینو بفهمن هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست سرار من یکی عاشق من شد به خاطر ادبیات فارسیم یکی عاشق من شد به خاطر داستان و تمسیل زیبایی که تو مصنوی آوردم. یکی عاشق من شد به خاطر اینکه مصنوی رو میخونه خب اون درد درون رو میطوره تخلیه کنه یک اشکباری میکنه و میگه هم مثل من دردمند بوده هم مثل من یک حالاتی داشته. خیلی رفیقها خیلی دوستها پیدا شدن در دنیا حتی این مصنوی در جهان کفر و غیر مسلمان ها ازش استقبال شد. اونها حتی از این کتاب استقبال کردن و ترجمه لاتین شده تجدید چاپ شده چندین مرتله حالا این از حسن بحث ما خارج هست خودش یک مبحث جدایی هست اما حتی کفار حتی بعضا دور از جمعه ما فساق و افرادی که حتی هیچ سنخیت و مجانستی با این درد ندارن اما خودشون دردمند بودن به نوعی با من همراه شدن اما کسایی که درد دل منو فهمیدن درد درون منو فهمیدن اونا خیلی کم بودن هر کسی از زن خود شدیار من و از درون من نجست اصرار من سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست ببینید گفتار انسان و عمل انسان معرف و در حقیقت میشه گفت ترجمان کیفیات درونی انسانه اون صحبتی که انسان میکنه جزی از وجود این انسانه اگر این انسان خودش مریض باشه صحبتش هم مریضه آنچه گیرد علتی علت شود و همین خودش در حقیقت میشه از روی کلام یک شخص جذبات درون اون شخص رو فهمید برای همینه که اکابر و بزرگان ما از خواندن هر کتابی من کردن چرا چون قبل از اینکه اون گفتار و اون کلمات به ما برسه اون نیات و اون جذبات اون معلف و مصنف و گوینده به ما میرسه برای همین حکیم علومه تعانوی رحمت الله تعالی میگه کسی که مبلقه کسی که سخنوره کسی که قلم دست میگیره به هر ترتیبی میخواد مطلبی رو بنویسه خوبه که اول تسهیه نیت کنه چون نیت تو به مخاطب تو سرایت میکنه ما بین این دوتا یعنی ما بین رفتار و گفتار انسان و ما بین کیفیات روحانی و درونی انسان یک اقترانی وجود داره یک نزدیکی و یک وصلی وجود داره اما درک این اقتران و درک این وابستگی چون از امور شهودی، از امور وجدانی و معنوی کار کس نیست هرکی نمیتونه به بفهمه این اقتران کجا هست و دقیقا چیه مگر کسی که خودش این رو چشیده خودش به این حد رسیده اون میتونه بفهمه که این ما بین گفتارش و ما بین نیاتش چقدر اقتران وجود داره چقدر نزدیکی وجود داره ببینید من مثال میزنم خدمت شما یک زمان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله حضانه در مجلس حکیم و رومه تحانوی حالتی بهشون دست میده تو جلسه که می نشستن مفتی شرفی صاحب می من حالتی داشتم قلبه توازو قلبه فنایت حالتی به من دست میداد فکر می کردم من کمترین این جمعم و فکر می کردم نگاه به هر که دوربر خودم می کردم می گوستن اینا همه جلو زدن اینا همه بالاخره تو این میدان رقابت از من سبقت گرفتن من عقب موندم آخرین, آخرین این قافل منم و یک حالتی به من دست میداد یک روزی به این حالت تو جلسه حکیم علومت تحانوی برای من خیلی قلبه پیدا میکرد یک روزه به که از دوستان گفتم قلبان خارج مجذوب الحسن یا کسی دیگه گفتم این حالت برای من خیلی تو مجلس حضرت این بوجود میاد گفت اتفاقا منم همینطورم. اینطورم درینید اینو درک کرده گفتار حکیم علام تانوی یک حاصلی داشته گویا ترجمان و گویا معرف بوده برای اون کیفیات درونی حکیم العلماء طاهانی اما کسی نوتن درک بکنه موذی ما شب یوسمانی دو نفری میگه ما رفتیم پیشه حکیم العلماء طاهانی رحمت الله تعالی گفتیم حضرت حالتی تو این جلسه به ما دست میده قلبه فنایت قلبه تواضع حس میکنیم همه دارن میرن همه از ما سبقت گرفتن ما وامانده و عقب منده این جلسه هستیم حکیم العلماء طاهانی فرمود والله منی که روی منبر میشینم روی این صندلی میشینم وقتی به شما ها نگاه میکنم حس میکنم همه شما جلوید و من عقب مونده. بعد مفتی شفیع میگه همین حالت و همین کیفیت درونی حکیم علام تاها بود که انعکاسش بر قلوب ما میشد و ما اینو رو حس میکردی. ببینید حالا مولانا میگه سر من از ناله من دور نیست ناله من یک سری داره رمز رازی داره اینا با هم اقتران داره هر کسی که ناله من رو دید تبعا باید از روی این چی رو تشخیص بده اون سر رو تشخیص بده اما هر کس نمیتونه تشخیص بده با وجود این اقتران قرار نیست هر کسی اینو درک بکنه چرا لیک چشم و گوش را آن نور نیست چشم و گوش ما قابلیت اون ادراک رو ندارن اون نورانیت رو ندارن ببینید دوستان من برای اینکه ما حقیقت ها رو درک بکنیم احتیاج به دو نوره یک نور ببینید ما میخوایم خوام چاه رو از راه تشخیص بدیم دوست رو از دشمن تشخیص بدیم یکی نور خورشیده اما اگه نور چشم نباشه ما میتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم هرچی هم این خورشید منور باشه قضا نمیشه یا ما نور درون داریم نوری که مربوط به منه هست نور چشم هست اما بیرون تاریکه خورشید نیست بازم من نمیتونم راه رو از چاه چیکار بکنم بدم دو تا نور لازمه یکی باید نور مربوط به منه یک نور مربوط به عالم بیرون منه اگر این دوتا نور کنار هم دیگر بود راه رو از چه تشخیص میدید. ببینید خیلی یا بعد از امام ابو هنیفه آمدن و شاید کتابخانه اونها و سطح مطالعی اونها به گفته اکیمالام از شاید از عیمه عربه بیشترم بوده بعضی افراد اما جرأت نکردن پا تو کفش عیمه عربه کردن و به جای اینکه خودشون رو مجتهد به خودشون رو مقلد فهمیدن و در اعثار مختلف ادوار مختلف مفسرین آمدن محدثین آمدن و نحش قدم این بزرگان حرکت کردند و خودشون موازین اجتهادی جدایی و اصول فقهی جدایی تدوین نکردن چرا؟ نور کتاب الله هست کتاب الله نوره اما من اون نور رو ندارم که این نور رو ببینم نور حدیث هست اما من اون نور رو ندارم که این نور رو درک بکارم مثال میذارم یکی آمد از افرادی که میگفت آقا اجتهاد لازم نیست نور در اون لازم نیست کتاب الله نور داره نور هدایت شو بگی برو جلو از اون افرادی که قائل بود که نیاز به این کاران نیست حکیم مولانا میگه تو جلسه من یکی نشسته بود از این افراد علی حکیمان هم یک شرح صدری داشتن و افراد مختلف تو رو شرکت می‌کردن بدون اینکه تنقید کنه تحقیر بکنه افراد مختلف تو جلساتشون بوده میگه اتفاقا یک روزی یک شخصی آمد جوانه که سوال کرد از من سوال کرد که ببخشید من یک سوال دارم کسی که غرایز جنسی روش خیلی فشار میاره از طرفی میخواد به حرامم گرفتار نشه خیلی روش فشاره بعد چیکار بکنه بعد میگه من هنوز ورنداز میکردم که جواب اینو چطور بدم با چه طریق اینو توجیح بکنم اون آقایی که میگفت آقا نور کتاب الله نور حدیث هست همینا رو بگیریم احتیاج به چیز دیگه نیست یک مرتبه گفت فعلیکم به سام تو حدیث آمده اگر میتونی ازدواج کن ازدواج کن نمیتونی روزه بگی اون طرف جواب داد که من روزه هم گرفتم اما نتیجه نداده بعد من گفتم بهش که جناب جواب شما ای که میگید بالاخره حدیث هست و خود ما ماشاءالله محدث جواب میدیم. حالا جوابشو بده. شما این که میگید نیاز نیست به نور درون تا نور حدیث رو ببینی. جواب تو همین همینه که تو گفتی تو همین تکست. جواب تو همین تکست فعليکم بسوم جواب تو همینه. اما جوابشو بده. میگه گفت نمیدونم حضرت. گفتم فعليکم علا برای استعلا هست. در لغت عرب میاد یعنی انقدر روزه بگیر که روزه تو بر شهبت تو قلبه پیدا کنه نه که یک روز روزه بگیر فردا باز یک قضای چربتون بخور بعد ببین روزه برای نفر نداد این علا برای استعلام اده فعليکم باید انقدر روزه بگیری که روزه تو بر تمام شهوات تو قلب بشه حالا فهمیدی جناب؟ فهمیدی که لازم نور درون تا نوره قرآن حدیث رو ببینی؟ گو من گو البته دوستان من این نور لازمه تا انسان با این نور یک روزی حکیم علامه تهرانی رحمت الله تعالی میگه رفت روی منبر و شروع کرده صحبت کردن علومی معارفی یک چیزهای بسیار بکر و ناب که اینا رو شاید توی کتابی توی مقاله علمی نمیدیدن از منبر و صحبت حکیم علامه تهرانی اینها رو میشنیدن یک روزی مولانا شفیع رحمت عثماني میگه که من ظفر احمد میگه که من یکی از خانمای حکیم علومه رحمت الله تعالی از محارمیشون بودم میگه من فوری رفتم گفتم ببینم امروز حکیم علومه چه کتاب مطالعه کرده تا به این علوم و معارف دست پیدا کرده روز جمعه بود فوری رفتم پس گفتم ببخشید از خانمشون سوال کردم امروز حکیم علومه چی مطالعه کرد رفت رو من بر این علوم و معارف از کجا میاری بگه من نمیدونم صبح کنار همون میز نشسته بود میز کارشون همون جاست داخلش رو نگاه کنید با همونجا مشغول بود صبح می گرفتم نگاه کردم داخلش رو دیدم یک جلد کلم الله مجیده یک مناجات مقبول ادعیه که خدای کی اونا تو آن اینا رو جمع آوری در ایام هفته اینا رو تقسیم کرده بعد از اکبر الله ثانی سوال کرده شما چقدر کتب مط... کتب بینی میکنید و چقدر بالاخره مطالعه می کنید من کتب بینی زیاد نکردم من بینی کردم اقتاب زمان رو و بزرگان زمان رو که علم براشون نور شده بود اونا رو ملاقات کردم از نور سینه اونا مند شده حالا ببینید دوستان من سر دوستان خدا از نالشون دور نیست یک اقترانه یک نزدیکی و یک وابستگی بسیار شدیدی ما بین اینها هست اما قرار نیست هر کس این نور رو درک بکنه چکاو تو اله وقتی ان سوء حفظی فاوصانی الى, الى ترک المعاصی فان لا یعلم نور من الہی ونور الله لا یطال العاصی نور علم با ظلمت معصیت یک جنب نمیشه کسی نور علم رو میخواد باید ظلمت معصیت رو ترک کنه و هر چه تقوات بیشتر بشه بتق الله با یعلمکم الله تقوا خودش معلمه تقوا خودش به تو درس میده تقوا دروازه ها رو برات باز میکنه تا این نور تقوا تو سینت بیاد اون مقا علومت یک علوم نابی میشه که خودت خودت حیران میشه که چطور یالله این هست کجا داره بیان ببینید امام شافعی شکایت میکنه پیش استادش اگر از لفاظی و حفظ اصطلاحات و یاد گرفتن چارتا اصول و قاعده و ضابطه شافعی شکایت میکرد خب اینجا سوال به وجود میاد گهگاه یک فاسق گهگاه یک کافر میاد خیلی از اصطلاحات فقهی و شرعی و عرفانی و قیل و قالها رو حفظ میکنه گهگاه یک غیر مسلمان اسلام شناس کتابی مینویسه که من مسلمان بخت زده میشم سبحان الله چه با... کار ارزشمندی کرده چه تحقیق علمی کرده این چی شد پس این سواد کتابه یعنی سیاهی نقوش کتابه شکایتی که امام شافی پیش استادش میکرد از این سواد و سیاهی نقوش نبود از برکت و نور علم بود اون شرح صدری که در اثر این علم باید میامد نمیامد اون برکتی که حاصل این علم بود و جلوتر شافیین رو تجربه کرده بود حالا نیست چرا نیست؟ من یک مثال دیگه میذارم براشون حکی اولا به تانوی یک روزی آمد به همون محل خودش نشست من چاره ندارم اینا رو یک کم باستر بکنم؟ حکیم العلماء طاهری میگه یک روزی نشستن به اون محلی که هر روز برای جواب دادن به خطوط و نامه‌ها در نظر گرفته بودن، نامه‌ها رو آوردن. جلوتر حکیم العلماء طاهری رحمت الله تعالی خوب یک سری اذکار و اورادی و اعمال انفرادی داشتن انجام میدادن بعد این خطوط رو شروع میکردن جواب دادن و بالاخره همه اینها بعداً به صورت کتاب درآمد و مجدد شناختن حکیم العلماء رو که واقعاً افرادها و رو در باب عرفان و تسجیه واقعا برداشتن و واقعا تونستن یک تسجیه ای و احسانی به صورت ناب نشاط گرفته از قرآن و حدیث به وجود بیارن همه علما برای این متفقن به نوعی تا جایی که مفتی محمد طقی عثمانی حفظه الله نائب رئیس مجمع جهانی اهل سنت در جده و شخصیت علمی که خب نیاز به معرفی نداره ایشون حتی میگه تا یک صفحه از ملفوظات حکیم علامه تحانوی رو من روزی با همه گرفتاری ها و مشقله های مختلف مطالعه نکنم نمیخوابم چون این قضای روح منه یا حضرت مولانا محمد امر سربازی شخصیت به اون بزرگی خب ماهای آخر زندگیشون زندگی, زندگی خیر و برکتشون به چند نفر دو سه نفر مسئولیت داده بودن یکی از اساتید بود من نالایق و یک نفر دیگه که شما فلان کتاب حکم علامه رو بخونید و شبها که فردا صبح جلسه ذکر رو به داشتن شبها برای افرادی که اینجا میان از این کتاب برای اونا تعلیم بکنید و حتی مولانا می من دوست دارم که کتاب‌های اکمل متوسطه رو جزء نصاب حضرت مولانا محمود سرسبزی می‌فرمودن که کتاب‌های اکمل متوسطه رو جزء نصاب درسی طلاب بگذارم. این دوره شخصیتی. ایشون می‌فرماد من نشستم یعنی از قول ایشون میگن نشستم یک روزی که این خطوط رو جواب بدم. این نور من می‌خوام از نور براتون صحبت کنم. نشستم بعد میگن نامه اول راوردن یکم نگاه کردم، یکم تعلل، یکم وقفهی شد کوتاه فرمودن نامه بعدی رو بدید نامه بعدی رو آوردن باز یک وقفهی یک مقص کوتاه باز گفتن نامه بعدی رو بدید نامه بعدی باز یک مقصی یک تعللی بعد بلند شدن از سر جشن. گفتن جمع کنید این رو رفتن و یک بیس دقیقه یک رو بی کمتر بیشتر دو مرتبه برگشتن گفتن حالا بیارید آوردن نامارو دو مرتبه شروع کردن جواب دادن حالا از نیش این قلم علوم میریزه معارف میریزه برکات میریزه مثل حروس گویا که باز آمد آب من جوی من گویا اون آب رحمت الهی به این جود دو مرتبه جاری شده بعد حالا حیرانن همه صبحان حالا چه چیزایی می نویسه یکی از متعلقین حکیم علومت تعالوی که در اون جمع نشسته بود گوه حضرت این برای ما خیلی جای بود. چرا؟ واحله اول اینا رو جواب ندادید رفتید 20 دقیقه گروبی نبودید و حالا دو مرتبه آمدید میشه اینو برای محل بکنید اگر امکانش هست یک سوالی در حیطه شخصی شما نیست مسائل شخصی شما نیست و به درد ما متعلقین میخوره ما برای همین آمدیم که ما از صادقین باشیم با صادقین و از اونها درس بگیریم حکمت انکار اون چی بود اکبر ما تهانه فرمود من نامه‌ها رو که شما آوردید هر روز اون نوری که حس می کردم حالا نمی نمیدیدم تو خودم بیدم ظلمته نمیاد اون علوم نمیاد اون برکات نمیاد اون معارف حیران شدم خدا چرا از من گرفته شده مولانا هم تو مسنوی میگه چون فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد و الله اعلم به سوا مولانا از روی تسنع و تسلف و تکلف صحبت نمیکرد در اشعارش میاد مولانا میگه تسلف و تسنو مولانا همین کلمات رو میاره که اینو تو کار ما نیست به زور نیش قلم رو سفر راندن و به هر ترتیبی شده لقات از این وری بر جمع کردن و اینو کار ما نیست چون فتاد از روزن دل آفتاب اون آفتابی که هر روز از روزن دل من نور میداد و من این نور رو به مخلوق خدا میدادم دیگه نمیتابه دفترای مصنوی تکمیل نشد دوستان میدونن نیمه تمام ملنا اینا رو کرد چون فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد و الله اعلم به خدا خودش بهتر میدونه حکمت این کار چیه چرا این دفترات نمیخواد تکمیل بشه چرا اون نور از این پنجره قلب نمیتابه من نمیدونم منم بیشتر از این دیگه جلو نمیرم و نمیخوام تزیع اوقات بکنم و اه... کتابام رو تکمیل کنم سبقم رو تکمیل کنم و نقوش سیاهی و نقوش کتاب رو به شما بده. فرق ما و مولانا اینه که مولانا چیزهایی رو میخواست بیان بکنه از علوم معارف و واردات قیبی که آجز بود چطور به مخاطبش تفهیم بکنه چون سخت اینا امور وجدانی زوغیه من امثال من و شارهین مسنوی مثل من حالا خوبام هستن ما می خوایم چیزهایی رو تفهیم بکنیم که واردات قلبی ما نیست. برعکس، مولانا نمیتونست تفهیم کنه واردات قلبی شو، ما میخوایم واردات قلبی رو تفهیم بکنیم که چی نداریم. اینه که گهی اوقات مخاطب ما گیج میشه، چی شد آخر؟ ما که چی شد. به هر حال، اگه گفتن حالا چیه حکمت این کار چی بود؟ اگه مولانا فرمودن من بعضی که دیدم اون نور نیست. اون برکت نیست اون شرح صدر هر روز نیست فهمیدم یک جای کار لنگ میزنه چرا این علوم رو الله گرفته یکم خودمو برانداز کردم تو 24 ساعت گذشته 72 ساعت گذشته من چه کاری کردم ظلمانی که اینا از من گرفته شده یادم اومد که مرغهای داخل خانه ما زنم سفارش کرده بود که اینا رو آب و دونه بدم بعد بیام فراموش کردم و این مخلوق خدا از دست من متعذی بود ظلمی ناخاسته از ناحیه من به این مخلوق خدا شده بود رفتم فوری خودم رسوندم، مرق و اون مباشی که حالا اونجا بود اونا رو آبودانه دادم استغفار و کردم و دیدم که اونا سیر میخورن بعد برگشت آدم بعد دیدم بله واردات داره میاد علوم داره میاد این برکات داره میاد این شرح سب داره ایجاد میشه حالا مولانا میگه گایی ما هم میگیم که خب اونا مردانی بودن ما هم چی هستیم؟ بگید مردانی هستیم اونا رجال بودن ما هم رجالیم آقا اونا رجال بودن من و تو رجیلم نیستی مرده میدانم نیستی اونا با کچکترین مسئله مثل این میفهمیدم ظلمت آمد پیش اصطادشون شکایت میکردن شکوتا الی وکی انسو احفظی فا اوصانی ترک المعاصی فا این العالم نور من الهی و نور الله لا یکتا لعاصی ما بس هفیق قلبمون همان قد مختات حسین بگید بمینی من ظلمتها رو حس بگونی من رو سر من از نالی من دور نیست امام شافیر عمدالله سر من از نالی من دور نیست لیک چشم و گوش را اون نور نیست من چیکار کنم اون چشم و گوش که بعد اون نور رو میداش یعنی قابلیت ادراک رو میداش اون نیست من چکار کنم حالا چطور به شما بفهمونم که سر و ناله من با هم یکیه میتونی از تو این ناله اون سر رو ببینی ولی نمیبینی من چکار کنم تنز جان حالا مولانا اینجا یک دلیل برام میاره مثالی میاره عقلانی چون خیلی ها میگن آقا یک مثال عقلانی هم برام بیار اینا که شما الان گفتید اینا همه چی بودن بگید مفاهیم عرفانی بودن اینا همه مزامینی بودن که شاید قابل درک برای همه نباشه یک مثال عقلانی هم برای ما بزنم بهتر بشیم مولانا که خیلی خوب یک مثال عقلانی هم برات میذارم که دو چیز به هم وصل دو چیز به هم چسبیده یکی رو ما می‌بینیم یکی رو نمی‌بینیم ادعای مولانا همین بود سر و ناله من به هم نزدیکه شما باید از رفتار و گفتار من اون محتویات درون من رو حس می کردید ناله من رو اما شما حس نمی کنید چون اون قابلیت ادراک رو ندارید و یعنی اینا با هم هستن چون شما حس نمی کنید نشان این نیست که اینا با هم نزدیک نیستن اینا با هم نزدیک اما شما حس نمی کنید حالا مدالا یک مثال اقلانی میاره ببین بالاخره خیلی چیز هست در دنیا که مجبوریم اعتراف کنیم اینا با هم و ولی اینها رو نمیتونیم با این حس های ظاهری به حقیقتشون پی ببریم روح محرک جسم روح محرک جسم ما هست و این در حقیقت جسم ما مظهر همین روح. روحه حرکاتش افعالش اما با وجود کمال و قربی که ما بین روح و جسم وجود داره به چشم دیده نمیشه روح جسم رو ما میبینیم اما روح رو قرار نیست هر کسی ببینه و درک بکره همهم بر این اذعان میکنن که آقا روح هست محرک اصلی این بدن اون روحه و مظهر افعال در حقیقت این تن اون روحه روح که؟ کسی کسینه اینجا جواب بده بلی اینا به هم وصل هستند اما ما نمیتونیم اینا رو با قایده های عقلانی ثابت کنیم آهن رو با آهن رو جذب میکنه ما این اینا یک اقترانه اما این اقتران چیه این کشش از کجاست نظریه علمی ثابت و قطعی ثابت نشده که آهن رو چرا آهن رو جذب میکنه اما هست کسی نمیتونه این, این کار کنه تنز جان و جان زتن مستور نیست بله قرب و نزدیکی دو چیز به هم دیگر به این معنا نیست که ادراک هر دوتا برای هر کسی مقدور باشه هر کسی بتونه این رو درک بکنه بلکه قوه مدرکی لازمه که قابلیت ادراک رو داشته باشه به طور این رو درد بکنه حالا مالا الان میگه تنز جان و جنز تن مستور نیست این از هم پوشیده نیستن تن و جان با همدگر وصلن اجینن لیک کس را دید جان دستور نیست اما قرار نیست کسی جان رو ببینه فقط مجبوری اعتراف کنیم بله هست اما چطورش کمش کیفش یه دیگه نمیدونی آتش هست این بانگ و نیست باد این بانگ نای این نقمه نی این کلام عارف در حقیقت کلام گرم و نیه مثل آتش جو آگ که خاصیت و عشق که خاصیت ایک خانه به خانه ایک سینه به سینه خاصیت عشق و آتش یکیه آتش از خانه به خانه سرایت میکنه عشق از سینه به سینه سرایت میکنه صحابر و صحابه میگن بخاطر چی؟ این مصاحبت آتشی ای آتش ای که از محبت رضا در سینه مصطفی بود به سینه این صحابر رسید. برای همین تمام آبدها زاهدها، آلمهایی که تا قیامت میان به درجه ترین صحابه هم نمیرسند. وجه امتیاز اینا همین مصاحبت بود سینه به سینه مصطفیه چسبنده بوده همین چیز اینها رو برتر از همه انسانیت کرد حالا این نقمه نی و این کلام عارف این نفیر او در حقیقه کلام گرم و آتشینیه آتش از سینبانگ نایی همونطور که آتش از خانه به خانه سرایت میکنه این آتش عشق از سینه به سینه سرایت میکنه دیگران رو مشتعل میکنه دیگران رو افروخته میکنه یک حیجان درونی درون ایجاد میکنه ببینید علام ندوی رحمت الله تعالی میگه حروف جامت و حروف راکت کلمه... کتابها اینا از تو یک شخصیت راکت میسازه یک شخصیتی جامت و بی حرکت بدون حیجانات عشق اگر میخوای اینا رو تجربه کنی باید یک انفاس پاکی رو گیر بیاری که اون انفاس پاک آتش عشق تو سینه باشه از سینه اونا به سینه تو سرایت بکنه این کتاب ها فقط یک علامت نقشه گنجن اما این نقشه گنج تو رو از راه نما مستقنی نمی کنه. باید نفری ای که این مسیر رو رفته و تجربه کرده حتما باید همراه مقصود. تجربه هم ثابت کرده که کلام عاشق، عاشق حقیقی در دیگران یک اشتعال و یک هیجان باطنی رو ایجاد میکنه این معلول بادها و حوثهای نفسانی نیست که بگی اینم مثل کلام های دیگر میتونه چیزی گفت نخیر این معلول بادها و حوثهای نفسانی نیست که در او اثری نباشه نخیر کلام عارف اثر زره حالا مولانا در دنباله میخواد این دولت عشق رو برای ما بگه که چه دولت ازمایی هست چه برکاتی رو داره و به این ترتیب میگه هر که این آتش ندارد نیست باز و هر که این آتش عشق رو نداره مردنش به از وجودش پرندهی که تو قفس باشه و ناله و نفیر نداشته باشه به قفص عادت بکنه این پرنده فطرتش مسخ شده یا این پرنده مرده پرنده ای که آرزوی پرواز نداره و در شوق پرواز ناله نداره نفیر نداره نشان از چیه پرنده ای که به قفس تلایی قانع شده من جام خوبه من نمیخوام پرواز کنم من آزادی و حریت نمیخوام چرا چون قسم اینجا میرسه آب اینجا میرسه قفس من قفس چیه بگید تلایی صحابه کرام به زندگی کسراها و قیصرها همین طور نگاه میکردن به چی قانع شدی به آبدونه دم و خالتون به قفس طلاییتون به دنیای آرای شده و تزیین شدهتون شما پر پرواز نمی‌خواید شما آرزوی وصل ندارید شما طعم قرب نمی‌خواید بچشید این نگاه صحابه به زندگی کسراها و قیصرها بود میگه کسی که مولانا میگه این نفیر رو نداره و این آتش عشق رو نداره در حقیقت انسان نیست انسان از اونس گرفته شده و تو با همین آتش عشق بر ملائکه برتری پیدا کردی الله تو رو خاطر همین آتش عشق پیدا کرد وگرنه عبادته اگر صرفا تو برای عبادت تنها خلق می شدی عبادت بدون عشق عبادت بدون احساس عبادت بدون انتخاب خب این عبادت رو ملائکه هم می کرده اینکه این که گفتن نحن نصب به حمده که و نقدس و لك. اما خدا گفت اون تسبیح و تقدیس شما رو من نمیخوام من تسبیح و تقدیس اینو میخوام چرا؟ چون این آقا وقتی تسبیح و تقدیس من رو میکنه با یک آتش درور میکنه با یک عشق میکنه با یک انتخاب میکنه تعلقات دنیا هست نفسانیت ها هست موانع هست خیلی چیزها بر سر را آمده اما این آمده زنجیر محبت خدا به پا انداخته اسیر عشق خدا شده یک خلبتی رو از این رنگارنگی دنیا انتخاب کرده و الله رو یاد میکنه مثل سلطان ابراهیم بن ادهم مملکت بلخ رو حزینه کرده تو یک گوشه نشسته خدا رو انتخاب کرده از رنگارنگی این کائنات به نظر شما اون سبحان الله و اون الحمدلله سلطان ابراهیم بن ادهم در قارهای نیشابور پیش خدا بیشتر عرضش داشت یا اون کروبی های آسمان بگید اون اگر سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر میگفتن مثل دم و بازدم ماست نفس میکشی جز فطرتته اصلا احتیاج به زحمت نداره احتیاج به تمرکز نداره احتیاج به مجاهده نداره دم و بازدمه همینطور ذکر ملائک فطرت بود بدون هیچ زحمتی این کار رو میکردن اما ابراهیم... سلطان ابراهیم بن ادهم اینو با یک آتش عشق کرد خیلی چدا رو فدا کرد به خیلی چدا پشت پا زد به نظر شما وقتی ابراهیم رو بردن تو آتش تو آسمان ولوله‌ای به پا نشد اتجلو فیها ما یفسد فیها ویسفك الدماء همونایی که میگفتن الله اینا رو خلق نکن اینا برن تو دنیا اینا ریزی میکنن اینا فتنه و فساد میکنن حالا همون ملائکه آسمان حیران شدن یا الله یک خلیل تو هست یک دوست تو هست اینو میخوان تو آتش بندازن جبریل برو کمکش بکن. همون جبرئیل اومده میگه تو رو نمیخوام اللمن میبینه اونا دست پاچه شدن اما ابراهیم سر جاش استاده چی این ابراهیم رو بادار کرد به این کار عشق تو آسمان ولوله ای شده ابراهیم دست بچه‌شو گرفته داره میبره تو یک مسیر یک خواهری به من تماس گرفت گفت بچم 12 13 سال بیشتر نداشته فوت کرده اصلا حالتی به من دست داده عجیب اصلا خواهر من مجاهده ای بوده غیر اختیاری خود تو مسیر زندگی تو آورده تا تو رو بلند بکنه یاد بکن از اون ابراهیمی که بچه سیزده چارده ساله با دستش میخواد سر ببره تو بچه تو با دستت سر نوردی نوردی این مجاهده استراری بوده غیر اختیاریه بوده اما مجاهده ابراهیم چیه؟ گاییوان دست بچه تو گرفتی میخواد ببری ایک پنسلین بزنی پیش وجدن چقدر ناراحتی؟ بچه میگه بابا کجا بریم؟ بریم مغازه بارد یک پفک میخوام بگیرم اما خودت میدونی که بچه رو دارم میبرم کجا آمپول بزنم و موقعی که به بچه آمپول میزنن تمام وجود تو درده پدر و فرزندی رو آوردن که توی یک محکمه جور کرده بودن هر دو تا رو شلاق بزنن اول پدر رو زدم تمام شد بردن کنار نوبت بچه که رسید اولین این که به بچه خورد بابا گفت آه بعد قاضی گفت که چی شد این شلاق به خودت خود در نیامد. بچه در شلاغه میخورد تو میگه آه که اون شلاغه به تنم بود این شلاق به دلمه این پاره تن منه این لخت جگر منه من حاضرم دو برابر شلاغه این من بخورم اما چی؟ این بچه من خار به پاش نره چطور میدونم تحمل کنم اگر خدا به ابراهیم میگفت خودتو بکش این راحت تر بود از این که چی؟ بگید ای که این چاغو رو گرفته و داره به حلقوم این میکشه و میگه اذبح اذبح خدا از اون بالا به جرم عشق تو هم می‌کشن و خوش ققایی است تو هم بر لب با ما که خوش تماشایی است این چه جور داره چرا دارن می‌کشن اینو به جرم عشق عاشقی نه و اگر کسی آتش آتش عشق در سینه‌اش بود تو مسیر محبت محبوبش هر ای رو بده کمه حتی سر اسمایل ابراهیم این درس رو به منتا داره چه نمیخوای نیمی بکنی برای این عشق و کسی که این عشق ابراهیمی رو نداره اون لحظه ای که ابراهیم چاقوب به هلقوم اسمایل مکشید تو آسمان چه ولوله ای بود اون لحظه ای که هنزل با لباس دامادی عروس شب اول زندگی رو گذاشت کشنه ی تیق عشق را قسل و کفن چه حاجت است زن که اثیر عشق تو بار کفن نمی کشف اون لحظهی که همین لباس دامادی کفن شده برای هنزله اللہ ملائکه آسمان و فرستاد گفت برید قصرشون رو بدید اون موقع ملائکه فهمیدن آتش عشق یعنی چی آتش عشق از انسان چی درست میکنه آتش عشق در انسان اقتحام میاره فل اقتحام یعنی دیوانگی. یک جنون مثبت یک دفعه خودت بزنی مولانا الیاس همیشه می‌فرمود الله اون طرف کوه مجاهدت هاست کسی که خدا رو می‌خواد از این گردن باد رند بشه پای کوه احد برو کوه احد باد حرف می‌زنه حدیث عشق میگه حکایت انس بن نذر رو به تو میگه کسی که بوی بهش رو از این کوه شنید شاید ما بریم کنار کود کوه، رو ببینیم، دست رو ببینیم، سوغات بخریم و بعد بگیم خوب خاطره ای بود این جبل این اینم این تنگه این اینم جای صحابه هست. اما یک ایده حسن مثلا علامه ندوی تو کتابش نوشته که کو احد حرف میزنه، حدیث عشق بیان میکنه. انس به نظر اینجا نره که بوی بهشت به ماشاالله میرسه از این کوه. ملائکه این صحنه ها رو که میدیدن بخت زده میشدن. یالا این؟, این چه شاهکار خلقتیه. این چه اوجوبه این ای چی داره تو وجود خودش که زیر تیک و تبرها داره میره اگه ما داریم تسبیح و تقدیس تو رو میگیم تو رو میبینیم اما این داره جان میده تسبیح و تقدیس نه این داره جان میده برای چی؟ ای تیر قمت را دل اشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تقائب و میانه چرا ملائکه‌شو خدا فرستاده تو این جمع ایمانی و شما گرد و گرد و شما رو گرفتن چون شما برای یک محبوبی جمع شدید که اون محبوب ظاهرا تو این جمع بگید نیست ای تیر رقمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غائب زمیانه ای این عشق که انسانو بلند میکنه دوستان هر کی این آتش عشق رو نذاره در حقیقت حیوانه دور از جمع ما حضرت شیخ عبدالغنی پلپوری رحمت الله تعالی شیخ شیخ ما است ایشون می‌فرماد موقع تهجد که میشد ساعت سه نصف شب عادت به تهجد داشتن حضرت میگه مولانا حکیم اختر من براشون وسایل وسایل وز... رو آماده می‌کردم افتاد به مسواکی حضرت که بلند می‌شد ترق معمول ما اینا رو دادم بهشون دل دوست خدا خوش بشه تتیه قلب دوست خدا یک عبادت مستقله برال میگه رو که میدادم حضرت وضو که میگرفت میامد به سمت مسجد که تحجد بخانه یک مرتبه میگفت آه ای قرار جان بیقرارم نیمه های شب نعره مستانه میزنه یک آه میگه هر شب من منتظر این آه بودم از این آه من به وجد میامدم از این آه من تکن میخوردم خدا میدونه عرش خدا چطور تکن میخورد خدا میدونه ملائکه خدا چی میشد نزدیک مسجد که می رسید ایک مرتب می گفت آه قرار جان بیقراران بعد ببین حالا نیازش رو ببین دعاش رو ببین عشقباریش رو ببین فقانش رو ببین با کی سر و صدا داره تو این نیمه های شب. حضرت می من وقتی این صحنه رو می دیدم این شعر در زین من تدائی می شد کدوم شعر؟ مولانا میگه گه من پیدا و دلبر ناپدید در دو عالم این چنین دلبر کدید؟ اگر فرهاد فدا شد برای کسی شد برای شیرینی شد که اونو دیده مجنون فدا شد برای لیلی شد که اونو دیده اما اینایی که تحجد میخوادن تو نیمه های شب از بستر گرم گذاشتن از خواب گذاشتن از لذتها و نفسانیتشون گذاشتن برای کی گذاشتن؟ بگید خدایی که اونو ندیده. کی قراره ببینن؟ و جوهای یوم ایذ ناظره الى ربها ناظره من میخوام شعرای دیگه بگم اما مزامین در رابطه با عشق میاد بحث عشق میاد آدم اصلا عجیب حالتی به انسان دست میده چقدر زیباست شهست سال هفتاد سال برای خدا یک خم داشته یک آتش داشته یک ولولی درون داشته یک روز الله در یوم المزید میگه بیایید اون دلوری که باش نادیده معامله میکردید حالا میخواد خودش رو نشون بده اما افسوس و صد افسوس برای اون کسایی که الله سبحانه و تعالی بون همیگه انهم یومئذ الربهم لمحجوبون امروز محجوبن محرومان و امروز الا اونارو دیدار نمیده نبی ما دعا میکرد اللهم لا تردعنی وجهکا یوم القیامه الا چهره خودت رو از من روز قیامت تنه هم محل امید همینه که ذات الله سبحانه و تعالی دیدار بده اما اون روز وای بر اون کسایی که الله بگه اخصو فیها ولا تكلمون و این ظلت خاری تو جهنم باش با من حرف نزن تو دنیاست تو عشق میخواستم عشق میخواستم آخ میخواستم ربنا میخواستم یک شب برای من زندگی کردی؟ یک شب دل تو به من دادی؟ یک روز اون طوری که صحاب زندگی کردن تو زندگی کردی؟ من اونجا دنبال صحبتت بودم هم کلامیت بودم با من قهر بودی اصلا قصد صلح نداشتی حالا دیدار میخوای اقصاو فی ها لا تکلیمون با ظلت خاری تو جهنم باش با من حرف نزن اللهم دیدار نمیده همینجا نشان عشقه که معامله عشق. خدا یک تحدید بزرگی که خاصرین رو میکنه محجوبین رو میکنه اینه که من شما رو دیدار نمیدم رسول باک چطور اللهم خير خیر ایامی یوم القاک فی بهترین روز من کدوم روز باشه خدایا؟ روز دیدارت مؤمن برای دیدار زندگی میکنه مؤمن برای لقا زندگی میکنه اگر جنت رو هم دوست داره مشتری بهشت نیست بلکہ اسیری عشق و جنت را هم برای این دوست داره که محل دیدار خداست محل سلام خداست محل رضوان خداست فصقاح ربهم شرابا تحورا تبقى یک روایت الله دست بلا کیف خودش تمام اهل جنت را مینوشند مؤمن برای این داره زندگی میکنه حقیقت مولانا میگه بعضی بنده های نیک و عاشق خدا هستن که بالفرض و المحال اگر جنت نمی بود جهنم نمی بود اونا خدا رو میخواستن. ولیس مزدور خدا رو عبادت نمی کردن. اسیر عشق بودن. حالا مولانا میگه کسی که این آتش رو نداره ببینید دوستان من هر عضو ما یک لذتی داره. چشم ما یک لذتی داره. یک سری لذت های رو از بیرون درک میکنه. دیدن یک سری منظره ها، یک سری صحنه ها چشم رو خونک میکنه و لذت چشم دیدن یک سری نغمه شنیدن یک سری نقمه ها برای گوش ما لذت بخشه هر عضو یک لذتی داره دست ما از لمس کردن بعضی چیزای نرم و خونک لذت میبره این لذت هر عضو است اما تو این لذت های این اعضا حیوانات با ما سهیمه حیوان میفهمه لذت چشم یعنی چی حیوان میفهمد لذت بوش یعنی چی؟ حیوان میفهمه لذت یک جای نرم و خوابیدن اینجا یعنی چی؟ اما یک لذت هست مال یک عضو و فقط مال من انسانه و کسی که اینو نداره انسان نیست. اون لذت دله. این لذت دلو فقط من دارم. این لذت دل چیه؟ لما detto an oqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma oqtal thumma uhya thumma oqtal thumma uhya bahs fada shudan baraye khoda ke miyamad nabiy be vajd miyamad khoday doost daram yek bar ta fadayetobesham zinda besham fadayetobesham بحث عشق مهمت رسول الباق مفرموت أرحنا يا بلال عرحنا يا بلال بحث عشق مهمت رحمته للعالمين ميقف جوئلت قرة عيني في الصلاة خنكية چشمان محمد كجاست نماز هم كلامية بخدا سجدية در مقابل خدا حرف زدن الله. إن ان عشقية كالنبية ما بأمتش تعليم ميذال اين والدلية و کسی که این لذت رو نمیفهمه، فهمه اما لذت های دیگه اعضای بدنش رو میفهمه، در حقیقت این به سمت چی سوق کرده دوستان من بگید سیر قحقرهایی به کدوم سمت داره بگید بهیمیت حیوان صفتی الان منم حفظ کنه شما را و از این لذت دل خدا ما رو بحرماند کنه بفهمیم لذت دل چیه حالا مولانا میگه کسی که از این لذت دل محرومه هر که این آتش ندارد نیست باز به گفته حافظ جایی میگه نمرده به فتوای من اون نماز خانید ای آدم زنده که عشق نداره همینطور زنده زنده براش چیکار کنید؟ نماز جنازه بخونی اینو در فهرست زنده ها این مرده روحش متعفن شده توی این کالبد جسمش دفن شده همین الان مرده متحرکیه نیست باد بیت اول نیست باد قسمت اول و نیست باد قسمت دوم اینها رو تجنیس میگن و تجنیس تام هست در لفظ وحدت دارن و در معنا اینها با هم اختلاف دارن نیست باد اول چی بود؟ آتش از این بانگنا یا نیست باد یعنی باد نیست فکر نکن اینها معلول بادهای نفسانی و هواهای درونیه نخیر این نسبت, دو این نسبت دو به نیست باد دوم به معنای چیه بربادیه یعنی هر که این آتش ندارد نیست باز یعنی چی آدمش به وجودش این یک وجه یک وجه دیگه هم بعضی از شراح بیان کردن مساجد لد ماجر مکی که رحمت بر اونها قالبه اونها میان اینو شر زیباتری کردن گفتن این باد گوی یک نفرین نیست گوی یک دعای بد نیست که مولانا کرده گوی یک دعای خیریه نیست باد خدا این رو به مقام قلبه تواضع برسانه به مقام عبدیت برسانه به مقام نیستی برسانه این مقام همه چیزه به گفته حکیم علمه تانوی برای همین مقام عبدیت سلطان ابراهیم بن ادهم مملکت بلخ رو هزینه کرد تا عبدیت به دست بیاره نبی ما با عبدیت به معراج رفت سبحان اللذی اصرا به اگر این معجزه قرآن میخواد بیان بشه فعتو به صورت منمثلهی رو خدا میخواد بیان بکنه <تصفيق> <تصفيق> الله زبان و طلاع اولش میگه که شما اگر میتونید مثل این قرآنی که ما بر عبد خودمون نازل کردیم عبدیت یک مقامه نیستی یک مقامه حالا من یک خاطری بگم از نمیدونم من شنیدم همینطور سهت و سخمش با کسی که گفته خب به اعتبار نتیجه چیز خوبیه میگه یک پیرمردی از همین خواف بوده. داخل اتوبوس از مشهد میامد تو مسیر میگه جای نگاه داشته بودن پاسگاهی بعد آقای میگه با یک حیثیت دنیاوی و یک ظاهرا نظامی آمد داخل اتوبوس جا دارین خوب راهنده راننده هم به خاطری که بعداً ممکنه گیر بدن این پاسگا خب بلای جا داریم بیا جا هم نیست جو صندلی پای نفری عقب بعد میگه آقا آمد تو و نگاه کرد چپ و راست همین پیرمرد بند خدا رو دید بعد بهش گفت که جناب شما بارند بشین ایشون میخاد بشینه که مبلیت دارم اول نشسته بودن از مبدع بودم و تا مقصدم ان شاءالله امجا چه چرا ولم باشم گفت ایشونو نمی‌شناسین کیه یک نگاهی کرد گفت که شما درجهتون چیه گفت درجه فلان گفت بعد از این چی میشید گفت درجه فلان گفت بعد از این درجه چی میشید گفت درجه فلان گفت بعد از این درجه چی میشید گفت درجه فلان, بعد از, درجه درجه فلان. بعد از این چی میشید گفت هیچ چی دیگه مرگه دیگه گفت من از همین الان هیچ چم جون تو حالا حالاها با 4 5 تا درجه دیگه عوض کنی تا به هیچ چی من همین الان هیچ چم برو 5 نفره عقب بشی درجام خیلی از تو بالاتره. اگه انسان بفهمه چی؟ هیچه و واقعاً این ابدیت و این نماز یعنی ابدیت، یعنی تو برسی به این مقام، دست تسلیم، تسلیم من خدا ابدم. مثل قلوم خطاکار جلوی آقا روزی پنج مرتبه حاضر بشه کمر عبدیت رو بشکنی بگی سبحان ربی العظیم در مقابل عظمتت کمر رو میشکسته اشرف اعزا به اخست و به خاک مالیده بشه بگی سبحان ربی العلا خدا من فرعون نیستم بگم انا رب العالم من میگم سبحان ربی العالم نمازین یعنی تمرین عبدیت همینطور حج از حوصله بحث ما خارجه حج یعنی عبدیت چی بپوشم مولا چی میخواد چه بگم مولا چی میخواد سرم چطور باشه موهاش مولا چی میخواد الان باید کجا باشم مولا چی میخواد؟ تمرین عبدیته زکات تمرین عبدیته من با مال محبت دارم اما خودم میگیرم مالو میبرم پیش فقرا چرا چون مولا هم گفته عبدیت تمرین عبدیت همه ارکان اسلام همینطور روز عبدیت چرا تشنه‌ای چرا گرسنه‌ای چرا نمی‌خوری منتظرم تا مولا اجازه بده همه اینکه موقع افطار میشه چون طمع خواهد زمان سلطان دین خاط بر فرق قناعت بعد از این حالا خوردن رو ببین تا پنج دقیقه پیش آقا دست به هیچ چی نمیزد اما حالا که اذن عام از طرف مولا شده حالا کسی نمیتونه جلویش رو بگیره چی شد حالا تمام میخواد سلطان دین از من حالا خوردن میخواد میخورم قبلا که نمیخوردم به خاطر اون نمیخردم حالا که میخورم ببین به خاطر اون میخورم این دین حالا این چیزی که اینجا نیست باد گفته خب قلبه شان رحمت الهی که بر هاجم دادله مهاجر مکی بود میگه این نیست بادی که اینجا هست هر که این آتش ندارد نیست باد به معنای لعن و نفری نیست در عیقت به معنای چیه جمله دعایی هست یعنی چی یعنی خدای اینو به مقام چی برسون همون پیر مرده؟ به حفی برسون یعنی خدای اینو هیچ کن که این بتونه به همه جا برسه تا وقتی بگی من من من من هیچی نمیرسی به هیچ جا نمیرسی باید چگار کنی منیت رو بذاری کنار و چی نگاهت به محبوب باشه بعد به همه جا میرسی آتش عشق هست کن در نیفتاد جوشش عشق هست کن در میفتاد دوستان این تشریحات در همین حد خوب میشه مختصر هم باشه ما به یک هفته هم نینامره تموم بکنیم ما بسته به تقاضای شما هست ولی من فکر می که اگر این طور باشه و برای ما مهم نباشه چند بیت خوندیم و کجا رفتیم و چه مبحثی رو تمام کردیم فکر می بهتره چون جای دیگه هم که ما داریم با همین ترتیبه حالا اگر شما دوستان باز اگر نظری داشته بعدم به جناب مولانا منعکس بکنید امال ما در خدمت شما هستیم وگرنه اون چیزی که ما از بزرگانمون دیدیم شیخ محترمه مولانا حکیم اختر گایغات یک بیت کامل نه یک تکه حتی ساعت تشریح می کردند و چیزی که ما عادت کردیم همینه و برای ما مهم نیست که چند بیت خانده بشه و به کجا برسیم باز اگر دوستان نظری داشتن حتما مولانا رو بگن ما اینشالا از نظر از شما استفاده خواهیم کرد. آتش عشق هست کندر نی فتاد جوشش اشق هست کندر می فتاد. دوستان در این بیت مراد از نی که قبلان گفتیم انسان کامل هست آتش اشق هست کندر نی فتاد. اینو که قبلا گفتیم نی مراد انسان کامل هست به خاطر تشابحی که با نی داشت وجه تشابهش هم خب همون جلسات جلسه قبل بود بله دیگه جلسه قبل خدمت دوستان گفتیم اما جوشش عشق است که در می فتاد مراد از می چیه مراد از کشش و جاذبه محبوبه می محبت محبوب چطور گوی محبوب با می محبت خودش عاشقان خودش رو از خود بیخود میکنه و در اونها آتش محبت ایجاد میکنه و همین مولانا این تشبیه رو در اینجا آورد من عادت شعران همینه که این کار رو میکنن می یه محبوب رو تو کلمای خودشون همینطور میاره در این بیت مولانا میخواد مقام عشق رو بیان کنه ببین تو عشق تو تنها نیستی همینقدر که تو خدا رو میخوای بمراتب،, بمراتب، بمراتب، بمراتب بالاتر از اون چیزی که تو خدا رو میخوای خدا تو رو میخواد حتی اینو بگم اگر تو عشقی داری از او داری اگر تو چیزی داری از او داری مران در این بید اینو میخواد بیان بکنه محبت چیزیه که در ما بین عاشق و معشوق مشترک محب و محبوب مشترک یعنی هم در وجود عاشق نسبت به محبوب و هم در وجود محبوب نسبت به محب اینها وجود داره اگر چه میانه این دو تا محبت زمین تا آسمون فرقه قرار نیست همون طور با همون کم و کیفی که من با خدا محبت دارم خدا با همون کم و کیف با من محبت داشته باشه ما بین با اینا خیلی فرقه اما همین اشتراک لفظی هم خودش یک چیه ذهی سعادته که اشتراک لفظی وجود داره من با خدا محبت دارم خدا با من محبت داره وگر نه نمیتونیم بگیم من کل الوجوه این محبت عبد با معبود یک رنگه، یک طریقه، با یک کیفیت. این گر فرق مراتب نکنی، زندگی. اگر این فرق مراتب رو نکنیم خیلی خطرناکه، الهاد بیدینیه چه نسبت خاک را با عالم پاک اما ولی همین مشارکت لفظی و همین مشارکت اسمی هم خودش نعمت کوچیکی نیست بلبل همین که قافیه گل شود، بس است برای بلبل همین که همقافیه چی بشه؟ بل بشه براش دنیایه خلاف خیلی از صفات صفات دیگر که صرفا مختص عبد یا مختص معبود اما محبت یک چیز مشترکه ما بین چی؟ خالق و مخلوق ما بین هر دو تا اینها هست ببینید علم آلوسی صاحب تفسیر و چه چقدر قشنگ میگه من یک دفعه صحبت داشتم دانشجویی بودن جایی بعد در رابطه با همین عشق صحبت میکردم یکی از این دانشجو که قیافه عجیب غریبی برای خودش درست کرده بود و بعد جلو هم نشسته بود این یک جوری بوت زده تاشو نگاه میکرد با تعجب بعد من وسط صحبت گفتم ببخشید شما فکر کردیم من از عشقی چی نمیفهمم نه؟ بعد یک مرتبه گفت که بله حقیقتن معمولاً کسایی که بلاخره اسم یک سری چیزا رو گذاشتن عشق نگاهی به ملاها و درویشا و نگاه به این اهل علم و اینا که میکنن میگه این بیشارا که اصلا اینا رو نمیفهمن اصلا اینا رو بگیم از اینا ردش بریم اما من یک نکته اونجا گفتم این جوان گفت این نکته عجیب بود و چی بود علمه آلوسی صاحب تفسیر روحالمعانی میگه محبت اولین حرفش میمه و میم از فشار دو تا لب ادا میشه لب بالا بود لب پایین رو بخواد لب پایین بود لب بالا بخواد اولین لفظ اولین حرف محبت تقاضای وصل میکنه اولین لف، اولین حرف محبت اینو کی میگه علامه آلوسی مفسر قرآن اینو میگه اولین لفظ محبت تقاضای وصل میکنه یعنی این دو طرف هست. تو باید اون رو بخوای این باید تو رو بخواد باید وصل باشه تو محبت ادا بشه اگر نباشه محبت ادا نمیشه چه زیبا این محبت دو طرف هست. همونطور که آتش عشق در کیه در محبه همونطور جوشش می محبت در کیه محبوبه اونم تو رو میخواد تو همون رو میخوای از این بالاتر یحب هم و نه. الله میگه هم و یحبونه من با اونا محبت میکنم اونها با من محبت میکنن این محبت دو طرف است اما جالب اینجاست الله اول محبت خودشو بیان میکنه هم من با اونا محبت میکنم اینجا نکته بسیار جالبی علامه آلوسی میفرماد قدم الله محبته او علی محبت عباده اللهم محبت خودش را اول بیان کرد که نسبت به بنده ها داره بعد گفت بنده های محب من نسبت به من محبت دارن این یک نکته است اللهم آلوسی میگه چیون لیعلمو انهم يحبون ربهم به فیضان محبت ربه خدا میخواد به تو بفهمونه اگر تو با من محبت داری این فیض محبت منه اول من با تو محبت کردم که تو با من محبت میکنی اول من تو رو خواستم که تو دنبال من افتادی تمام شما سرورایی که میشه اینجا آمدید خدا نگاه رحمت به شما کرده شما اینجا آمدید او خواسته که شما او رو خواستید بر همین مولانا میگه اوی اوی آتش اشق هست در نی فتاد جوشش اشق در می از این طرف اینو میخواد از این طرف ای اینو میخواد ببینید در خیلی از آیات قرآن الله سبحانه و تعالی میگه ان الله يحب المحسنين يحب الصابرين این محبت چیه خدا من با صابر محبت میکنم من با محسن محبت میکنم من با اونا محبت میکنم یعنی من در مقام محبم او در مقام چیه محبوبه من با او محبت میکنم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله برای مدعیان محبت خدا میگه تو ناز و ادای نبی من طریقه نبی من رو تو تمام افعال حرکات سکنات اون ناز و نخره نبی من رو بیار اون موقع نمیخواد تو ادعای محبت کنی من با تو محبت میکنم یحبه بکم الله یک چیزی آدم آمد حکیمالو توانوی میگه یک افسری یک درجداری در هندوستان یک زمانی آمد یک حکایتی رو برا من تعریف کرد خیلی دهنده بود از یک جایی رد می شدم یک پیررد یک پیرزن خیلی مسن نبت بیشتر سن داشت. این هر روز از جلوی خانه این که رد می شدم منو صدا میکرد. تو خانه منو نوازش می کرد محبت می کرد اکرام می کرد و خورده ای سال سن خیلی پیرزن مسلنی بود. بعد یک روز تو همین ابراز محبت ها من بهش گفتم مادر جان چی باید شده؟ این همه آدم از تو این پیاده رو رد میشن. با اینها محبت نمی کنی. با اینها اونطوری که با من اکرام و اعزاز منو رو میکنی اینا رو نمیکنی چیه؟ منم قبلنم شما رو نمیشته شما کی هستی؟ چی باعث این کار شده؟ گم من از پشت سر وقتی به شما نگاه میکنم راه رفتند و ناز و نخری راه رفتند مثل پسر منه که فوت کرده چون همین مشابهت وجود داره من تو رو دوست داره حکیمالام توانوی میگه اگر کسی با نبی محبت کنه خوردنش مثل نبی خوابیدنش مثل نبی معاشرشش مثل نبی معاملاتش مثل نبی الله با او محبت میکنه یک شاعری هست از خلفای شیخ ما هست شعری میگه تکان دهنده تری نبی که شباہت لے کے آیا ہوں اگر میدان محشر خدا از من بپرسد تو دنیا چی آوردی من به خدا جواب میدم تری نبی کے شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت از تو کرده من صورت لکه آیا ها. خدا یا من صورت محمد آوردم حقیقت محمد تو نصیب میخوای عذاب کنی صورت محمد و عذاب کن مشابهت به محمد این اللہ همین مشابهت رو هم دوست داره برای همین اگر تو خودتو شبیه محمد کردی به هر نسبتی که تو خودتو نزدیکتر به رسول کردی به همون نسبت الله با تو محبت میکنه این چیزایی من اینا رو داشتم میگفتم که بعضی اعمال هست که اگر تو انجام بدی به جایی که تو با خدا محبت کنی خدا با تو محبت میکنه میریسی به جایی که تمام وجودت شهادت میده رشته ای در گردنم افکند دوست میبرد هر جا که خاطر خواه اوست من نمیرم او میبره شیخ ما میفرمود مردم همه فکر می که توازن می فرمودن مردم همه فکر می کنن حکیم اختر می کنه تعلیف می کنه تصنیف می کنه تبلیغ می کنه اما حکیم اختر می دونه که او می کنه به نام من می کنه اگر رشته یا محبت او نباشه من کیا؟ امه دیوانه اسقر اصقر نمشکو ذوق اوریانی کوی کنچه لجاته خود جایب و گریبان کو. ای اصقر بیچاره نم من دیوانگی در رای خدا رو بلدم نه این عشق و سوز رو بلدم اما چه کنم که یکی یقی منو گرفته و کشان کشان منو دارم میبره مردم منو دارم میبینم که میرم اون دستی که داره منو میکشه او رو نمیبینم او میبره او میکشه ابو سعید ابو الخیر رو یک زمانی دیدن سر و, و گنده و لبخند رو لباش بشکفتن حضرت نشان عاشق رو ما شنیدیم چشم تر و رنگ زرد و, آه سرد و قامت نحیف و لاغر اما این 4 علامت هیچ کدوم تو شما نیست اما یک سری شواهد قرائن دیگه هست که همه میفهمن تو عاشقی تال حرف میزنی قلب هات تا میخوره تا تو, تو رو میبینیم اذا ر و ذکر الله از دیدن تابلوه محبت خدای خدا یاد میاد چهره ترجمه قلبته این شواهد قرائن نشانه اینه که تو محبوب خدا هستی اما از یک سری چیزای دیگه میبینیم که لبت خندان و ظاهرت خیلی فربه و آسوده چطور این این علامتو توش دیده نمی‌ تو شما دیده نمی‌شه چشم تر آهسر رنگ زرد قامت لاغر و نحیف اینا تو شما نیست گف روزیا چند عاشق بودهم حال یا معشوقم و آسوده به پای همت رحد دنجا بری و به بال محبت بری با پای همت فقط کافیه دو قدم بری بعد او میبره بعد او میکشه به نام تو میکنه تمام عالم میگم فلانی رفت اما تو میگی او برد اگر او نبود من نبودم همه آتش اشکی که از نیه هست میبینن اما جوشش می رو بگید کی میبینه؟ جوشش می رو کی میبینه؟ خود عاشق فقط میبینه من نیستم من نیستم من نیستم او میکشه او میبره او میکنه به نام من میکنه آتش عشق از ک اندر نی فتاد. جوشش عشق از ک می فتاست تو هر چه داری از می محبت محبوب داری او تو رو خواسته که تو او رو میخوای این رو اونها حس میکنن بقیه باشه انشالله شاءالله برای حفصه این دیگه وقت دیگه از این بیشتر تقاضا نمیکنه میبینم که چهره های شاداب و با طراوت شما دوستان آدمو به وجد میاره شرح صدر میده و هی میخوای انسان بگی واقعا نگاه های پر لطف شما به آدم شرح صدر میده و مزامین میاد همینطور اما چه کنیم از یک طرف وقت از این بیشتر دیگه تقاضی نمیکنه و دام کنیم اللہ سبحانه و تعالی چیزهایی که گفته شد به من به شما دوستان به همه سروران تافیق عمل نصیب بکنه